کتاب حسرت ها نورا به کتاب خیرش. حالا می توانست حروف کوچک حک شده ی روی جلد را ببیند. کتاب حسرت ها خانم علم با انگشت روی جلد زد و گفت هر حسرتی که از روز تولدت به بعد داشتی توی این کتاب ثبت شده. حالا بهت این اجازه رو میدم که بازش کنی. از اونجایی که کتاب زیادی سنگین بود، نورا برای باز کردنش اول چهارزانو روی زمین سنگینش است. شروع کرد به ورق زدن کتاب کتاب به فصل مختلف تقسیم شده بود که به ترتیب سفر یک دو سه و همینطور یکی یکی بالا می‌رفتند تا به سی و پنج می رسیدند. با پیش رفتن کتاب فصل ها هم سال به سال طولانی تر می شدند. اما حسرت هایی که نورا جمع کرده بود اختصاصا متعلق به همان سال نوشته شده نبودند حسرت ها توجهی به ترتیب گاه شمار نمی و جا به جا ترتیب این فهرست ها همیشه در حال تغییره. آهان، آره، خوب فکر کنم منطقیه. نورا خیلی زود متوجه شد که حسرت هایش از چیزهای کوچک و روزمره، پشیمونم که امروز ورزش نکردم، تا موضوعات مهم، پشیمونم که قبل از مرگ پدرم بهش نگفتم دوستش دارم را شامل می شدند ادامهدار ادامه دار بودند و پیش زمینه داشتند و در صفحات متعدد تکرار می شدند. پشیمونم که توی گروه هزار تو نموندم چون برادرم رو ناامید کردم پشیمونم که توی گروه هزار تو نموندم چون از خودم ناامید شدم پشیمونم که تلاش بیشتری برای نجات محیط زیست نکردم پشیمونم که وقتم رو صرف شبکه های اجتماعی و مجازی کردم پشیمونم که با ایزی نرفتم استرالیا پشیمونم که وقتی جوونتر بودم بیشتر خوش نگذروندم پشیمونم که اونقدر با بابا بحث و دعوا میکردم. پشیمونم که شغلی مرتبط با حیوانات نداشتم پشیمونم که توی دانشگاه به جای فلسفه زمین شناسی نخوندم پشیمونم که یاد نگرفتم چطور آدم شادتری باشم پشیمونم که انقدر احساس گناهکاری کردم پشیمونم که یاد گرفتن اسپانیایی رو ادامه ندادم پشیمونم که توی آزمون دروس پیشرفته رشته های علمی رو انتخاب نکردم پشیمونم که یخچال شناس نشدم پشیمونم که ازدواج نکردم پشیمونم که برای خوندن کارشناسی ارشد توی دانشگاه کمبریج درخواست پذیرش نکردم پشیمونم که سالم زندگی نکردم. پشیمونم که به لندن از کشی کردم. پشیمونم که نرفتم پاریس تا انگلیسی تدریس کنم. پشیمونم که نوشتن رومانی رو که توی دانشگاه شروع کردم به پایان نرسوندم. پشیمونم که لندن رو ترک کردم. پشیمونم که وارد شغلی بدون آینده شدم. پشیمونم که خواهر بکتری نبودم. پشیمونم که بعد از تموم کردن دانشگاه یک سال رو صرف تفریح نکردم، پشیمونم که پدرم رو ناامید کردم، پشیمونم که بیشتر از نواختن پیانو اون رو تدریس کردم، پشیمونم که سرمایه مالیم رو درست مدیریت نکردم، پشیمونم که توی روستا زندگی نکردم. بعضی حسرت ها کم از بقیه بودند، حسرتی پیاپی پی, پی نامرعی و دوباره مرعی می شود. انگار که داشت به نورا چشمک میزد آن حسرت این بود. پشیمونم که هنوز بچه دار نشدم خانم علم که ظاهراً دوباره به طریقی ذهن او را خوانده بود توضیح داد. این حسرتیه که بعضی وقتها وجود داره و بعضی وقتها نه. چند از این حسرتها توی کتاب هست. از سی و چهار سالگی به بعد در طولانی ترین فصل انتهای کتاب، حسرت‌های متعددی مربوط به دن بودند. همگی نسبتاً شدید بودند و مثل آکوردی بلند و پر صدا از کنسرت یوزف هایدن در سر نورا پخش می شدند. پشیمونم که با دن نامه بودم. پشیمونم که باهاش قطع رابطه کردم. پشیمونم که باهاش توی یه میخونه محلی زندگی نمی کنم. در حالی که به صفحه خیره شده بود. یاد مردی افتاد که نزدیک بود با او. ازدفاج کنه وزن زیاد حسرت نخوسین بار دن را در دورانی دید که با ایزی در توتینگ زندگی می کرد. لبخندی پت و پن داشت وریشی کوتاه. ظاهر از شبیه مجرهای قدیمی تلویزیون بود با و کنجکاو زیاد می نوشید. اما به طریقی هیچ وقت گرفتار بدحالی های بعد از نوشیدن نمی شود. تاریخ هنر خوانده بود و دانش عمیقش از نقاشی‌های روبنس و تینتورتو را با رسیدن به سمت سرپرستی نیروی انسانی در شرکت تولید شکلات شکلات‌های پروتئینی به سرانجام رسانده بود. با وجود این رویایی داشت و رویایش این بود که میخانه‌ای در روستا باز کند. رویایی که دوست داشت آن را با او شریک شود با نورا. نورا شیفتش شد و با هم نامزد شدند. اما نایهان متوجه شد که نمیخواهد با او ازدواج کند. در دل از این میترسید که مثل مادرش بشود. نمیخواست ازدواج پدر و مادرش را تکرار کند. همانطور که به کتاب حسرت ها خیره شده بود، به این فکر کرد که آیا پدر و مادرش اصلا زمانی همدیگر را دوست داشته اند یا صرفا در زمان مناسب با نزدیکترین فرد ممکن ازدواج کرده اند. مثل بازیی که به محض تمام شدن موسیقی باید نزدیک ترین فرد به خودت را با دست بگیری. نورا هرگز دوست نداشت در آن بازی شرکت کند. برتراند راسل می نویسد، ترس از عشق همان ترس از زندگی است و کسی که از زندگی به ترسد مردهی بیش نیست. شاید مشکل نورا همین بود. شاید فقط از زندگی کردن می‌ترسید. اما برتراند راسل بارها ازدواج کرده بود و روابطی خارج از ازدواج داشت. بنابراین شاید نصیحتش در این مورد چندان معتبر نبود. مادرش سه ماه پیش از مراسم ازدواج فوت کرد. نورا به شدت متاسف و اندوهگین بود و با اینکه پیشنهاد کرد تاریخ ازدواجشان را عقب بیاندازند، این کار به دلایلی هرگز انجام نشد. قمه نورا با افسردگی و استراب و حس از کنترل خارج شدن زندگیش ترکیب شد. ازدواجش همچون آرزی این احساس آشوب به نظرش می رسید و حس می کرد به ریل قطاری بسته شده و تنها راه شل کردن تنابها و آزاد شدنش این است که ازدواج را لغو کند. با این حال، ماندن در بتفورد مجرد بودن لغو برنامههایش برای رفتن با ایزی به استرالیا، گرفتن کاری در مغازه ابزار موسیقی و آوردن گربه، حسی دقیقاً برعکس آزادی داشت. خانم علم گفت: وای نه. و رشته افکار نورا را قطع کرد. تحملش برات خیلی سخته. ناگهان تمام احساس پشیمانی و درد ناشی از ناامید کردن دیگران و خودش و دردی که کمتر از یک ساعت پیش سعی کرده بود از آن فرار کند به جانش افتاد. حسرتهای متفاوت با همدیگر ترکیب شدند. در واقع همانطور که به صفحه های گشوده کتاب نگاه میکرد، کرد، انگار به دردی بدتر از زمان حضورش در بدفورد گرفتار شد. قدرت تمام حسرتهایش که همزمان از کتاب برمیخواستند برایش به زجری تحمل ناپذیر تبدیل شده بود. وزن اندوه و حس گناه و ندامت بیش از حد زیاد بود. روی آرنجهایش به عقب تکیه داد. کتاب سنگین را رها کرد و چشمانش را محکم بست. به سختی می نفس بکشد. انگار که دستهای نامرئی دور گردنش حلقه شده بودند. متوقفش کن خانم علم دستور داد ببندش کتاب رو ببند نه وقت چشمات کتاب رو ببند باید خودت انجامش بدی بنابراین نورا با اینکه حس می کرد الان بیهوش می شود دوباره صاف نشست و دستش را زیر جلد کتاب برد به نظرش از قبل سنگین تر شده بود اما موفق شد کتاب را ببندد و بعد نفسی سرشار از آرامش بکشد. ام زندگی ها همکنون آغاز میشوند خوب خانم علم دست به سینه ایستاده بود با اینکه دقیقا شبیه همان خانم علمی بود که نورا میشنخت رفتارش مشخصا خشونت ها میستر بود خانم علم بود اما به دلایلی او نبود همه چیز نسسبتا گیج کننده بود نورا هنوز نفس نفس می‌زد. با این حال خوشحال بود که دیگر فشار همزمان تمام حسرتهایش را حس نمی‌کرد. گفت، خوب، کدوم حسرت از بقیه بیشتر به چشمت میاد؟ داری کدوم تصمیم رو عوض کنی؟ میخوای کدوم زندگی رو امتحان کنی؟ دقیقا همین را گفت، امتحان کنی. انگار که اینجا مغازه لباس فروشی است و نورا می تواند زندگی را به سادگی یک تیشرت انتخاب کند. همه چیز مانند بازی شرورانه بود. خیلی دردناک بود. حس کردم دارم خفه میشم. این کارا چه فایده ای داره؟ نورا نگاهی به بالا انداخت و برای نخستین بار لامبها را دید. صرفا بدون حباب که با سیم از سقف آویزان بودند. سقف هم معمولی و خاک سری رنگ به نظر می رسید. با این تفاوت که این سقف به هیچ دیواری نمی رسید. مثل کف کتابخانه سقف هم تا ابد ادامه داشت. فایدهش اینه که به احتمال خیلی زیاد زندگی قبلی تمومه. میخواستی بمیری و شاید هم همین طور بشه. جایی لازم داری که بری، جایی که موندگار بشی، یه زندگی دیگه. بنابراین باید خوب فکر کنی. اسم اینجا کتاب نیمه شبه. چون هر زندگی تازه ای که هست، همین حالا شروع میشه. حالا هم نیمه شبه، الان شروع میشه. تمام آینده هایی که میبینی کتاب کتابهای تو هم نشون همین هستن، تمام لحظه های حال و آینده ای که میتونستی تجربه کنی. پس اینجا هیچ گذشته ای نیست. نه. فقط عواقب گذشته های مختلف رو اینجا میبینی. اما اون کتاب ها هم به هر حال نوشته شدن من همه میدونم رو اما حق نداری به و هر زندگی کی به پایان می رسه می تونه چند ثانیه، چند ساعت چند روز یا چند ماه و حتی بیشتر باشه اگر زندگی پیدا کردی که واقعا می خواستی زندگیش کنی می تونی تا وقتی که از کوهلت سن بمیری همون رو زندگی کنی اگه واقعا و امیقا زندگی رو بخوای نیازی نیست نگران باشی جوری همونجا میمونی که انگار از اول هم اونجا بودی چون بالاخره توی دنیایی واقعا همیشه همونجا بودی خیلی ساده بخوام بگم کتابش دیگه به کتاب خونه برگردونده نمیشه دیگه قرضی نیست و تبدیل به هدیه میشه به محض این که به این نتیجه برسی که واقعا اون زندگی رو میخوای تمام چیزهایی که الان توی سرت هست از جمله کتاب خونه نیمه شب، در نهایت به خاطره ای اونقدر محو و گنگ تبدیل میشه که انگار اصلا وجود نداشته، یکی از لامپ های بالای سر سوسو سو زد. خانم علم، با لحنی که کمی بوی تهدید میداد ادامه داد، تنها خطر ممکن مال وقتیه که این جایی، بین زندگی ها. اگه میل به ادامه دادن رو از دست بدی روی زندگی اصلی تأثیر میذاره و ممکنه به نابودی اینجا ختم بشه اون وقت برای همیشه از بین میری میمیری و دیگه به هیچ کدوم از این کتاب‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنی خودم هم همینو رو می‌خوام می‌خوام بمیرم می‌میرم چون خودم می‌خوام برای همین قرص‌های زیادی خوردم تا اووردوس کنم می‌خوام بمیرم خب شاید شاید هم نه به هر حال الان اینجایی نورا سعی کرد متوجه موقعیت شود. خب، اگه توی یه زندگی بدتر از زندگی قبلیم گیر افتادم چطوری به کتاب خونه برگردم؟ ممکنه اولش حسش نکنی. اما به محض اینکه کاملاً کاملا احساس ناامیدی کنی به اینجا برمیگردی بعضی وقتا این حس آروم آروم سراغت میاد. بعضی وقتام یه دفعه بهت دست میده. اگه هیچ وقت حسش نکنی، همونجا میمونی و قاعدتا یعنی همونجا شاد و خوشحالی. از این ساده تر نمیشه بیانش کرد. بنابراین انتخاب کن که چه کاری رو متفاوت انجام میدادی تا من کتابش رو برات پیدا کنم. یعنی همون زندگی رو پیدا کنم. نورا سرش را پایین گرفت و به کتاب حسرت ها نگاه کرد که روی کاشی های زرد و قهوه‌ای زمین افتاده بود. یاد مکالمات شبانهاش با دن درباره رؤیایش برای باز کردن میخانهی کوچک در روستا افتاد. اشتیاق دن واگیردار بود و انگار که تا حدودی به رؤیای نورا هم تبدیل شد. آرزو میکنم که دن رو ترک نکرده بودم. که هنوز با اون توی رابطه بودم. پشیمونم که پیش هم دیگه نموندیم و اون رؤیا رو محقق نکردیم. زندگی هست که توش هنوز با هم باشیم؟ خانم علم گفت: "البته." کتاب‌های کتابخانه دوباره شروع به حرکت کردند، انگار که طبقات کتاب در واقع ریل خطوط تولید کارخانه باشند. اما این بار به جای آن که مثل مارش عروسی آهسته باشند، لحظه به لحظه سریعتر از قبل حرکت می‌کردند، تا جایی که دیگر نمی‌شد کتابها را از هم تشخیص داد. فقط به شکل جریانی سبز رنگ پیش می‌رفتند. بعد درست به همان اندازه ناگهانی متوقف شدند. خانم علم خم شد و کتابی را از طبقه پایینی در سمت چپ خودش برداشت. این کتاب از آنهایی بود که جلد سبز تیره داشت. آن را به نورا داد. بسیار سبکتر از کتاب حسرت ها بود. گرچه از نظر اندازه شبیه هم دیگر بودند. این کتاب هم روی عطفش هیچ نوشته ای نداشت و فقط با فونتی کوچک و دقیقا همرنگ بقیه کتاب ها روی جلدش چیزی نوشته بود زندگی من اما این زندگی من نیست اوه نورا همه این ها زندگی های تو هن. الان چیکار کنم؟ کتاب رو باز کن و برو صفحه اول نورا همین کار رو کرد خانم علم به دقت و محتاطانه گفت خیلی خوب، حالا خط اول رو بخون. لورا به خط اول نگاه کرد و خواندش از میخانه خارج شد و به هوای خونک شبانه قدم گذاشت. لورا فقط به اندازه زمان داشت که با خودش فکر کند میخانه؟ بعد از آن همه چیز اتفاق افتاد. مثل کتاب با سرعتی زیاد در هم پیچید و ناخانا شد. نورا همزمان احساس ضعف کرد. هرگز آگاهانه کتاب را رها نکرد، اما لحظه‌ای آمد که دیگر در حال خواندنش نبود. و لحظه دیگر بعد از آن اصلا هیچ کتاب یا کتابخانه‌ای وجود نداشت. سه نعل اسب نورا در هوای سرد و تمیز بیرون ایستاده بود برخلاف بدفورد اینجا باران نمی آمد با خودش نجوا کرد کجا هستم؟ ردیفی از خانه های سنگی کوچک و تراسدار در سمت دیگر جاده بودند جاده پیچه کمی داشت خانه های قدیمی و ساکت با چراغ های خاموش در کناره ی روستا که بعد از آنها فضای خالی و بیجان جان دشت قرار داشت. آسمانی تمیز، گستره ی وسیع از ستاره ها و هلال روبه محاق ماه، بوی مزاره، هوهوی دو بخشی های جنگلی و بعد دوباره سکوت. سکوتی که انگار جسم و جان داشت و در هوا هز می شد. عجیبه نورا در بدفورد و بعد در آن کتابخانه عجیب بود حالا همینجا توی این جاده روستایی زیبا بدون آنکه حرکتی چندانی کرده باشد این سمت جاده با نور طلایی خارج شده از پنجره طبقه پایین ساختمان روشن میشد سرش را بالا برد و تابلو بادقت و ظرافت رنگ شده میخانه را دید که در باد تاب میخورد. نل روی هم سوار شده زیر تابلو به دقت این کلمات را میساختند سه نعل اسب جلو نورا تخت سیاه پایداری روی آسفالت بود دست خط خودش را روی تابلو شناخت که با ظریفترین و تمیزترین حالتش نوشته شده بود سه نل اسب سهشنبه شب شب مسابقه پرسش و پاسخ ساعت هشت و سی دقیقه. دانش واقعی است که بدانی هیچ چیز نمی دانی سقرات پس از باختن در مسابقه پرسش و پاسخ ما در این زندگی نورا چهار علامت تعجب را پشت سر هم میگذاشت. احتمالاً احتمالا آدم هایی که راحتتر و شادتر بودند این کار را میکردند. امیدبخش امید بخش بود سرش را پایین گرفت تا ببیند چه پوشیده پیراهن جینی که آسین هایش را روی بازو بالا زده بود شلوار جین و کفش لژدار هیچ کدام از اینها را در زندگی واقعیش نمی پوشید. از حرمای هوا موهای بدنش سیخ شده بودند و مشخصا لباسش مناسب این نبود که مدت زیادی را بیرون بگذراند. دو انگشتر در انگشت حلقهاش بود. یکی حلقه یاقوت کبود نامزدیش که بیش از یک سال پیش لرزان و گریان درش آورده بود و دیگری حلقه ازدواج ای ساده. دی ساعتی به دست داشت البته نه ساعت دیجیتال در این زندگی یک ساعت باریک و ظریف آنالوگ با اعداد رومی داشت حددودا یک دقیقه از نیمه شب گذشته بود این اتفقا چطور ممکنه در این زندگی دستهایش نرمتر و لطیفتر بودند شاید به آنها کرم میزد لاکی شفاف روی ناخونهایش برق میزد با دیدن خال کوچک و آشنای روی دست چپش کمی احساس آرامش کرد. صدای قدمهایی را روی سنگ‌ریزه ها شنید. کسی داشت در مسیر به سمت او می آمد مردی که به لطف پنجره های میخانه و تنها لامپ خیابان دیده میشد. مردی با گونه های گلگون و سبیلی خاکستری، شبیه سیبیل چارلز دیکنز و کاپشن شمی مانند خمره‌ای به شکل انسان که زنده شده باشد. از حالت بسیار محتاط راه رفتنش معلوم بود که کمی مست است. شب به خیر نورا، جمعه برمیگردم. واسه اون خواننده محلی، دن میگه یارو خیلی کارش خوبه. ظاهرا در این زندگی نورا اسم مرد را میدانست است. آها، آره، البته جمعه شب خوبی میشه. دستکم صدای نورا مثل همیشه بود. مرد را تماشا کرد که با وجود خالی بودن خیابان چند بار چپ و راست را نگاه کرد و بعد در کوچه میان خانه ها ناپدید شد. واقعاً داشت اتفاق میافتاد همین بود. زندگی میخانه ای، رویایی که به حقیقت پیوسته. روبه تاریکی شب گفت خیلی عجیب غریبه، خیلی خیلی عجیب غریب. گروه سه نفری دیگری هم از میخانه بیرون آمدند. دو زن و یک مرد در حالی که از کنار نورا میگذشتند به او لبخند زدند یکی از زنها گفت دفعه دیگه میبریم نورا جواب داد آره همیشه دفعه دیگه هم هست به سمت میخانه رفت و از پنجره نگاهی به داخل انداخت به نظر خالی میآمد اما چراغها هنوز روشن بودند حتما آن گروه سرفره آخرین افراد توی میخانه بودند که رفتند. میخانه بسیار جذاب و ترغیب کننده به نظر میرسید. گرم و با هویت میزهای کوچک و تیرک های چوبی و چرخ کالسکه ای که به دیوار وصل شده بود. فرش قرمز زخیم و پیشخانی با روکش چوبی که تعداد چشمگیری پمپ نوشیدنی در آن بود. قدمی از پنجره دور شد و درست آن سمت میخانه. جایی که آسفالت جایش را به چمن میداد تابلویی دید. سریع به سمتش رفت و نوشته ی رویش خواند. لیتل ورس از ورود راننده های محتاط استقبال می شود سپس در قسمت وسط بالای تابلو نشان کوچکی دید که دور تا دورش سه کلمه شورای شهر اکسفورد شایر نوشته شده بود روبه شب زمزمه کرد انجامش دادیم، واقعا انجامش دادیم این همان رویایی بود که وقتی در پاریس کنار رود سن قدم میزدند و با را میخوردند که از بلوار سن میشل خریده بودند، دن برای نخستین بار دربارش به او گفت: رویایی نه درباره پاریس، بلکه روستایی انگلیسی که با هم دران زندگی می کنند. می خانه در آن زندگی میکنند. میخانهای در نواحی روستایی اطراف اکسفورد شایر، وقتی سرطان مادر نورا به طرزی شدید برگشت و به قدد لنفاویش رسید و به سرعت شروع به پیشروی در بدنش کرد، رؤیای ها هم با وقفه روبرو شد. دن همراه نورا از لندن به بدفورد نقل مکان کرد. مادر نورا درباره نامزدی آنها می دانست و قصد داشت به اندازه زنده بماند که عروسیشان را ببیند. اما چهار ماه زودتر از موعد درگذشت. شاید همین بود. همین زندگی، شاید این نخستین بار بود که شانس می آورد یا در واقع دومین بار. نورا اجازه داد لبخندی نگران روی لبهایش بنشیند. راه رفته را روی سنگریزه ها بازگشت و به سمت در کناری ساختمان رفت که مرد مست و سیبیلوی با کاپشن شمی از آن بیرون آمده بود. نفس عمیقی کشید و داخل رفت. گرم بود و ساکت. نورا توی یک جور راه رو یا دالان بود. کافه زمین با کاشی سفالی پوشیده شده بود. پایین دیوارها دیوار چوبی داشت و بالایش کاغذ دیواری با نقش برگ درخت افرا. در راه روی پیش رفت و وارد سالن اصلی میخانه شد که از پنجره آن را دیده بود. با دیدن گربه‌ای که انگار ناگهان از غیب ظاهر شده بود بالا پرید. یک گربه برمی شکلاتی و لاغر و ظریف. خمشد و نوازشش کرد و نگاهی به اسم حک شده روی صفحه آویزان از قلادهش انداخت. ولتر گربهی متفاوت با اسمی همسان. برخلاف گربه مونارنجی خدار عزیزش به نظر نمی‌آمد. این یکی ولتر هم از گربه نجات یافته باشد. گربه شروع به خورخور خور کرد. سلام ولس شماره دو. به نظر میاد شادی. هممون به اندازه تو شادیم. گربه با خورخوری دیگر احتمالاً حرفش را تایید کرد و سرش را به پای او مالید. نورا او را از روی زمین برداشت و به طرف پیشخان رفت. به پمپ‌ها ها نوشیدنی های متصل بود. از نوشیدنی سیاه و سیب گرفته تا نوشیدنی مالت انگلیسی و هندی. نوشیدنی محبوب کشیش گم شده و پیدا شده. خانم مارپل، لیموهای نمک خوابیده رؤیه های درهم شکسته یک جعبه خیرات برای مؤسسه حفاظت از پروانه ها روی پیشخان بود نورا صدای به هم خوردن شیشه ها را شنید مثل این بود که کسی داشت ماشین زرفشویی را پر می احساس کرد استراب سینهش را تنگ کرده آشنایی بود بعد مرد دراز و دیلاقی بیست و چند ساله ای که لباس شلوول و آزاد راگبی به تن داشت، از پشت پیشخان بالا آمد و بدون آنکه توجه خاصی به نورا بکند، آخرین لیوانهای کثیف را هم جمع کرد و در ماشین ظرفشویی گذاشت. سپس آن را روشن کرد و کتش را از روی جالباسی برداشت. پوشید و کلید ماشینش را بیرون هاورد. خداحافظ حافظ نورا، همه این میز و سندلی ها رو تمیز کردم. ماشین هم روشنه. باشه، ممنون، تا پنجشنبه نورا که احساسی شبیه جاسوسی داشت که نزدیک بود لو برود گفت، آره میبینم کمی پس از بیرون رفتن مرد، نورا صدای قدمهایی را از زیر پاشنید که از سمت پشت میخانه عرض کاشیهای سفالی را طی میکرد که اندکی پیش نورا از رویشان گذشته بود. بعد هم او آمد، متفاوت به نظر میرسید. ریشش را کوتاه کرده بود و دور چش پایش و حلقه های تیره بیشتری دیده میشد یک لیوان نوشیدنی سیاه توی دستش بود که آخرایش بود و دیگر داشت تمام میشد هنوز هم کمی شبیه مجری قدیمی تلویزیون بود فقط انگار چند فصلی برنامه جلو رفته بود نورا گفت دان انگار که حتما باید دن را شناسایی و نامگذاری میکرده مثل خرگوشی کنار جاده فقط میخوام بگم که خیلی به تو به هر دومون افتخار میکنم دن با بیخیالی به اون نگاه کرد الان داشتم آب و خاموش میکردم باید فردا لوله هاشو تمیز کنیم دو هفته است که ولش کردیم نورا اصلا نمیدانست دن درباره چه حرف میزند گربه را نوازش کرد درسته آره البته لوله ها شوهرش چون در این زندگی دن واقعا شوهرش بود به میز و صندلیهای وارونه که دور تا دورشان نگاه کرد. تیشرت رنگ و رفته فیلم آرواره ها را به تن داشت بلیک و سوفی رفتن خونه نورا مکس کرد هس میکرد دن دربارهٔ کسانی حرف میزند که برایشان کار میکنند مرد جوانی که لباس شلوول راگبی به تن داشت احتمالا همان بلیک بود به نظر نمیرسید هیچکس دیگری آن اطراف باشد در حالی که سعی می کرد با ورود وضعیت اساساً عجیب غریبی که داشت طبیعی رفتار کند گفت آره فکر کنم رفتن حواسشون به همه چیز بود خوبه یادش می که در تولد بیست و سالگی دن آن شرت آرواره ها را برایش خریده بود ده سال پیش جوابای امشب عجب چیزی بودن یکی از تیمها همونی که پیتو و جولی توش بود فکر می مارادونا سقف کلیسای سیستین رو نقاشی کرده. نورا سری به تایید تکان داد و وولتس شماره دو را نوازش کرد. وانمود می کرد پیتو و جولی چه کسانی هستند. اگه بخوام عادل باشم امشب مسابقه سخت بود. ممکنه دفعه دیگه از یه وبسایت سایت دیگه برشون داریم. منظورم اینه که اصلا کی میدونه بلندترین بلندترین قله رشتکوه قره نمی چیچی چی چی اسمش چیه؟ اسمش کیدوست؟ دن کمی محکمتر از آنچه باید گفت. خب، معلومه که تو میدونی چی میشه. بیش از حد مست بود. از همون چیزایی که بلدی چون مثل آدم های عادی عاشق موسیقی راک و این چیزا نبودی و همیشه فقط دنبال سنگ و خاک و این چیزا بودی. نورا گفت: «ا، مثل اینکه تو یه گروه موسیقی بودم. ما؟» آن موقع بود که به یاد آورد دن دوست ندارد او در آن گروه موسیقی باشد. دن خندید. نورا صدای خنده‌اش را مشنا. اما نمیشد گفت کاملا از آن خوشش میآمد. یادش رفته بود که در طول مدت رابطهشان حس شوخ طبیع دن تا چه اندازه به مسخری کردن دیگران و مخصوصا نورا بستگی داشت. با هم که بودند نورا می خیلی به این جنبه شخصیتش توجه نکند. دن خیلی جنبه های دیگری هم داشت. مثلا با مادر نورا در دوران مریضیاش خیلی مهربان بود. می توانست هر چیزی حرف بزند همیشه پر از رؤیاهای مختلف برای آینده بود. جذاب بود و نورا از کنار او بودن معذب نمیشد. به هنر عشق زیادی داشت و همچنین همیشه میستاد تا با بیخانمان ها حرف بزند. به دنیا اهمیت میداد. آدم ها هم مثل شهرند نمی شود به خاطر چند بخش کمتر جذابشان به کل آنها را کنار گذاشت. شاید جاهایی دارند که آدم خیلی ازشان خوشش نمیآید. مثلا هومه شهر و کوچه های تاریک و خطرناک. اما بخش های خوبی هم دارند که حضور در آنها را ارزشمند می کند. دن چند پادکست اصاب خوردگون را دنبال می کرد که به نظرش نورا هم باید آنها را گوش می کرد. حالت خندهش نورا را آزار میداد و موقع قرقره کردن دهانشوگه خیلی سر و صدا می کرد. بله شبها لحاف را به سمت خودش می کشید و بعضی وقتها که بحث نظراتش درباره هنر و فیلم و موسیقی میشد بیش از حد خود پسندانه رفتار میکرده در هر صورت هیچ مشکلی نداشت که خیلی بزرگ محسوب شود خوب. حالا که نورا بیشتر فکرش را می کرد، دن هیچ وقت از کار او در موسیقی حمایت نکرده بود و گفته بود که حضورش در گروه هزار تو و امضای قرارداد موسیقی برای سلامت ذهنیش بد است و در واقع برادرش را خودخواه خواند. اما آن موقع نورا این حرف او را نه چراق قرمزی برای رابطه ایشان، بلکه چراغ سبز دیده بود. طرز فکرش این بود: دن به او اهمیت میدهد داشتن کسی که برایش مهم باشد حس خوبی دارد کسی که اهمیتی به شهرت و چیزهای ظاهری و پیش پا افتاده ندهد و تواند به پیش برد زندگیشان کمک کند به همین خاطر وقتی دن در بار بالای برج آکسو از او درخواست ازدواج کرد نورا جواب مثبت داد شاید از اول هم حق با او بوده و باید جواب مثبت میداده دن جلو آمد و وارد سالن شد. لحظه لیوانش را پایین گذاشت و حالا داشت با گوشیش دنبال سوال بهتری برای مسابقه پرسش و پاسخ میخانه میگشت نورا به این فکر افتاد که دن امشب چقدر نوشیده است به این هم فکر کرد که نکند رؤیایش برای داشتن میخانه در واقع رؤیای نوشیدن مقدار بی از نوشیدنی های الکلی بوده اسم یه چندزلی که تا وجه داشته باشه چیه؟ درا که دوست نداشت واکنشی شبیه واکنش چند لحظه پیش دن و شود به دروغ گفت نمیدونم دنگوشی را توی جیبش گذاشت ولی فروش خوبی کردیم همشون امشب خیلی نوشیدن واسه سه هم بعد نبود همه چیز داره درست میشه منظورم اینه که فردا بالاخره یه چیزی داریم که به بانک بگیم شاید واسه باز پرداخت وام بهمون به وقت بیشتری بدن به نوشیدنی توی دستش نگاه کرد می تکانش داد و دا دا بعد آن را کشید اما باید به ایجی بگم منوی این ها رو عوض کنه. هیچ کی توی لیتل ورس نمیخواد لبوی شیرین و سالاد باقلا و کیک ذرت بخوره اینجا که فتس نیست میدونم که خوب فروش میرنن ولی به نظرم نوشیدنی هایی که انتخاب کردی نمیارزن. مخصوصا اون کالیفرنیا ها باشه دن برگشت و پشت سرش را نگاه کرد تابلو کجاست چی؟ هخت مگه نرفتی بیاریش داخل. پس دلیل بیرون رفتنش این بوده. نه نه. الان میخوام برم بیارمش. فکر کردم دیدمت که رفتی بیرون. نورا لبخندی زد تا نگرانیش را پس بزند. آره رفته خب رفتم. میخواستم نگران گربمون بودم. وولز. وولتر. پیدش نمیکردم کردم. واسه همین رفتم بیرون دنبالش بگردم و پیداشم کردم. مگه نه؟ دن پشت پیشخان رفته بود و داشت برای خودش ویسکی میره ظاهرا متوجه نگاه قضاوتگر نورا شده بود. تازه این سومیه، شاید هم چهارمی. بالاخره شب مسابقه است. میدونی که وقتی داوری میکنم چقدر استرس میگیرم. این کمکم میکنه خنده دار باشم. دیدی که چقدر خنده دار بودم، نه؟ آره، خیلی. حسابی خندیدم. چهره دن ناگهان جدی شد. دیدم که دستی با ارین حرف میزدی. چی گفت؟ نورا مطمئن نبود چطور باید جواب این سوال رو بدهد. چیز خاصی نمیگفت. همون حرفای همیشگی. ارین رو که میشنسی؟ حرفای همیشگی؟ فکر میکردم تا حالا باهاش حرف نزدی؟ منظورم حرفایی که مردم همیشه میزنن. نه حرفایی که ارین میزنه. حرفای عادی مردم. حال ویل چطوره؟ نورا حد زد. خیلی خوبه. سلام رسوند. چشمان دن از تعجب گرد شدهاند واقعا؟ نورا واقعا نمیدانست چه بگوید. شاید ویل یک بچه باشد. شاید هم اصلا توی کما باشد. ببخشید. نه، سلام نرسونده. بب... ببخشید. حواسم پرت بگذریم. من میرم تابلو رو بیارم. گربه را روی زمین گذاشت و راه افتاد که دوباره بیرون برود. این بار متوجه چیزی شد که هنگام ورود به میخانه ندیده بود. برگی قاب شده از روزنامه آکسفورد تایمز که تصویر نورا و دن را جلوی سه نعل اسب نشان میداد. دن بازویش را دور نورا حلقه کرده بود. کتش شلواری به داشت که نورا تا به حال ندیده بود. خودش هم لباس بلندی پوشیده بود که در زندگی اصلیش هرگز امکان نداشت بپوشد. اصلا به ندرت لباس بلند می پوشید. میخاندارها رؤیایشان را به واقعیت تبدیل کردند. طبق آنچه در روزنامه نوشته بود، میخانه را ارزان و در وضعیتی بد خریده و بعد با ترکیب مقدار کمی پول ارث ارس دن و وام بانکی و سرمایهی که از قبل داشتند، آن را بازسازی کرده بودند. مقاله داستان موفقیت آنها را تعریف می کرد، اما از آن زمان در واقع دو سال می گذشت. بیرون رفت و به این فکر کرد که آیا واقعا می شود زندگی را با دیدن چند دقیقه پس از نیمه شب یک روز سهشنبه قضاوت کرد؟ شاید هم این تمام زمانی بود که لازم داشت باد داشت شدت می گرفت و در آن خیابان ساکت روستایی تابلو را روی پیاده رو کمی به جلو هل داده بود و نزدیک بود چپش کند درست پیش از آنکه نرا تابلو را بردارد لرزش گوشی را توی جیبش حس کرد متوجه نشده بود که گوشی توی جیبش است آن را بیرون آورد پیامی از ایزی متوجه شد عکس پس زمینه گوشیش تصویر خودش و دن در مکانی گرم و هارعی است. با تشخیص چهره قفل گوشی را باز کرد و پیام را بالا آورد. عکس نهنگی بود که از آب اقیانوس بیرون پریده و کف سفید مثل لحظه باز شدن شامپاین در هوا پراکنده شده است. عکس زیبایی بود و صرفاً دیدن آن لبخند به لب نورا آورد. ایزی داشت چیزی می نوشت. یک پیغام دیگر ر این یکی از عکس‌هایی هست که دیروز از روی کشتی گرفتم. و پیغامی دیگر. نهنگ گوش پشت مادر. سپس عکسی دیگر. این بار دو نهنگ که کمرهایشان از آب بیرون آمده بود. با بچه هاش. آخرین پیام هم چند شکلک نهنگ و امواج آب داشت. احساس گرمایی خوشاگند به نورا دست داد. نه فقط به خاطر اکس ها. که مسلما زیبا و دوست داشتنی بودند بلکه به این خاطر که با ایزی در تماس بود. زمانی که نورا تصمیم گرفت عروسیاش را با دن لغو کند، ایزی اصرار زیادی کرده بود که نورا با او به استرالیا برود. نقشه همه چیز را کشیدند و برنامه ریختند که نزدیک خلیج بایرون زندگی کنند و توی یکی از کشتیهای تفریحی تماشای نهنگ کار پیدا کنند. در انتظار این ماجراجویی جدید، کلیپ‌های متعددی از نهنگ‌های پشت را با هم به اشتراک گذاشته بودند. اما بعد نوران ترسید و پشیمان شد. درست همانطور که از کردن، بودن در گروه موسیقی و ازدواج ترسیده بود. اما برخلاف آن دفعات، این بار حتی دلیل هم نداشت. تازه در مغازه تئوری ریسمان شروع به کار کرده بود و بله، حس می‌کرد باید به آرامگاه پدر و مادرش رسیدگی کند. اما همچنین میدانست که ماندن در بدفورد بدترین انتخاب ممکن است. با این حال همین انتخاب را کرد. به خاطر یک جور دلتنگی عجیب و پیشبینی پذیر برای خانه و شهر خودش که همگام با افسردگی از شدت می و همان افسردگی هم بود که به او می لیاقت شاد بودن را ندارد. چون دن را آزرده کرده بود و حالا یک عمر غرق شدن در تنهایی و افسردگی در زادگاهش مجازات او بود. و راستش اراده یا آزادی فکری یا حتی انرژی آن را نداشت که هیچ کاری بکند. بنابراین در عمل صمیمیترین دوستش را با یک گربه عوض کرده بود. در زندگی واقعیش وقت با ایزی دعوا نکرده بود اصلا قضیه اینقدر پر حیجان و دراماتیک نبود اما پس از رفتن ایزی به استرالیا کم, کم رابطه رابطه‌شان گرمای خود را از دست داد و دوستیشان به یک مشت پیغام تبریک تولد پر از شکلک و لایک در فیسبوک و اینستاگرام بدل شد نورا مکالمات خودش و ایزی را خواند و متوجه شد حتی با اینکه هنوز ده هزار مایل با همدیگر فاصله دارند در این دنیا ارتباطشان را خیلی بهتر حفظ کرده اند. این بار که با تابلو به داخل میخانه برگشت دن را هیچ کجا ندید. مدتی در راهروی میخانه منتظر ماند و به این فکر کرد که پله ها کجا هستند؟ مطمئن نبود که دوست داشته باشد دنبال شوهر مستی برود که درست نمیشناسدش. در انتهای ساختمان پشت دری که رویش نوشته بود فقط کارکنان پله ها را پیدا کرد. روی قالی نخلی نخودی رنگ کف راه رو قدم گذاشت و به سمت پله ها رفت. درست بعد از پوستر قاب شده ای از فیلم چیزهایی که در تاریکی یاد می‌گیری، یکی از فیلم محبوبشان با بازی رایان بیلی که در سینمای اودیون بدفورد با همدیگر دیگر تماشایش کرده بودند، قاب کوچکتری را رو روی لبه یک پنجره کوچک دید. عکس عروسیشان بود، سیاه و سفید و به سبک اکسای روزنامه‌ای. از کلیسای بیرون می آمدند و بارانی از خورد کاغذهای رنگارنگ روی سرشان میبارید. درست نمیشد صورت هایشان را دید اما هردویشان میخندیدند و تا آنجا که میشد از روی عکس فهمید به نظر میرسید عاشق همدیگرند. لورا یاد حرفهای مادرش درباره دن افتاد از اون پسرای به درد بخوره خیلی خوششانسی سفت بچسب بهش. برادرش جو را هم دید که سرش را تراشیده بود و واقعا خوشحال به نظر می رسید. یک لیوان شامپاین توی دستش داشت و دوست پسرش لوئیس هم که مشاور سرمایه گذاری بود و با هم رابطه کوتاه و فاجعه باری داشتند کنارش ایستاده بود ایزی هم بود راوی هم که بیشتر شبیه حسابدار بود تا تب زن کنار زنی عینکی ایستاده بود که نورا نمیشناخش. در حالی که دن توی توالت بود نورا را پیدا کرد. اینکه مشخصا مشکلات مالی داشتند و جلسه پر استراب فردایشان با بانک این را اثبات میکرد اساسیه خواب گران قیمت به نظر میآمد پنجره ها پردههای زیبا داشتند تختی عریز و ظاهرا راحت وسط اتاق بود و پتوی رویش تر و تمیز و سفید مینمود در هر دو سمت تخت کتابهایی قرار داشتند در زندگی واقعیش دست کم شش ماه می شد که هیچ کتابی کلار تختش نمیگذاشت اصلا در آن شش ماه هیچ چیز نخوانده بود. شاید در این زندگی تمرکز بهتری دارد. یکی از کتاب‌ها را برداشت. مدیتیشن برای تازه کارها. زیر آن نسخه ای از بیوگرافی فیلسوف محبوبش هنری دیوید سورو قرار داشت. روی میز کوچک آن سوی تخت هم کتابهایی بود. نورا به یاد می‌آورد آخرین کتابی که دن خوانده بود بیوگرافی تولوز لوتریک یا همان قول کوچک بود. اما دن در این زندگی دارد کتاب خودسازی تجاری به اسم صفر تا صد رسیدن به موفقیت در کار تفریح و زندگی و همچنین آخرین نسخه مجله راهنمای میخانه های خوب را میخواند. نورا احساس میکرد بدنش تغییر کرده کمی سالمتر و قویتر اما مستربتر. با دست روی شکمش زد و متوجه شد در این زندگی بیشتر ورزش میکند. موهایش هم متفاوت بود سنگینتر به نظر می رسید و وقتی کمی به آن دست کشید متوجه شد پشت موهایش بلندتر است. اندکی احساس منگی می کرد. حتما دست کم چند لیوانی نوشیدنی نوشیده بود. چند لحظه بعد صدای کشیده شدن سیفون رو شنید. سپس صدای قرقره کردن دهانشویه به گوش رسید. به نظر بلندتر از آن بود که لازم باشد. در وقتی وارد اتاق شد پرسید حالیس خوبه؟ نورا متوجه شد صدای دن آنطور نیست که به خاطر داشت. به نظر تو خالی می آمد و کمی سردتر. شاید خسته بود، شاید از سر بود، شاید به خاطر مستیش بود، شاید به خاطر ازدواج بود، شاید هم دلیل دیگری داشت. نورا به سختی می توانست یاد بیاورد که دن قبلا چطور حرف میزد، زد و اصلا دقیقا چطور آدمی بود. اما خوب، طبیعت خاطر همین است، نورا در دانشگاه مقاله‌ای با عنوان اصول خاطره و تخیل هابز نوشته بود. توماس هابز در نوشته‌هایش خاطره و قوه تخیل را عملاً یکی حساب کرده بود. نورا هم از وقتی این موضوع را کشف کرد، دیگر هرگز کاملاً به خاطراتش اعتماد نکرد. آن سوی پنجره، تنها لامپ موجود جاده روستایی خالی را با نور زرد خود روشن می‌کرد. نورا عجیب غریب رفتار می‌کنید. چرا همینطوری توری وسط اتاق ما میخوای می واسه خوابیدن آماده بشی یا مشغول یه جور مدیتیشن ایستادنی هستی؟ به این حرف خودش خندید. فکر میکرد خیلی خنده داره است. به سمت پنجره رفت و پرده را کشید. سپس شلوار جینش را در آورد و روی پشتی صندلی آویزان کرد. نورا در این مدت به او خیره شد و سعی کرد آن کشش عمیقی را که پیشتر از او دریافت میکرد دوباره احساس کند. اما تلاش زیادی لازم داشت که نورا انتظارش را نداشت. زندگی هر کسی میتونه به بینهایت شکل مختلف پیش بره. دن مثل نهنگی در اقیانوز خودش را به سنگینی روی تخت انداخت. کتاب سفر تا صد را برداشت. سعی کرد تمرکز کند. دوباره کتاب را پایین گذاشت. لبتابی را از کلار تخت برداشت و هدفونی را توی گوشش چپاند. شاید میخواست به یک پادکست گوش کند توی فکر بودم، نورا احساس ضعف می کرد. انگار که فقط نصف نیمه آنجا بود، یاد حرف خانم علم افتاد که می گفت، ناامیدیش از زندگی او را به کتابخانه برمیگرداند بر می گرداند. نورا احساس می کرد کشیدن روی تخت کنار مردی که دو سال از آخرین ملاقاتشان گذشته، در مجموع کار عجیبی خواهد بود زمان را از روی ساعت دیجیتالی کنار تخت خواند. دوازده و, بیست و سه دقیقه. دن همانطور که هنوز هدفون توی گوشش بود، نگاهی به نورا انداخت. خیلی خوب. ببین، میدونی که اگه نمیخوای امشب واسه بچه دار شدن تلاش کنیم، میتونی خیلی راحت به هم بگی؟ چی؟ منظورم اینه که میدونم اینطوری باید یه ماه دیگه صبر کنیم تا دوباره بدنت آماده شده باشه. داریم واسه بچه دار شدن تلاش میکنیم؟ من بچه میخوام. نورا، امشب شده چرا عجیب خریب رفتار می نورا کفشایش را درآورد. چیزی نیست، آدیم خاطره ای به یادش آمد خاطره ای مربوط به تیشرت آرواره ها. در واقع آهنگ بود آسمان زیبا همان روزی که تیشرت آرواره ها را برای دن خرید برای نخستین بار قطعی برایش نواخت که آن را برای گروه هزار تو نوشته بود آسمان زیبا به حساب خود نورا این بهترین ای بود که تا آن روز نوشته بود و از آن مهمتر قطعهی بود که با تکیه بر خوشبینیش نسبت به آن دوران از زندگیش نوشته شده بود زندگی تازهش با دن الهام بخش آن قطعه بود دن آنقدر با بیخیالی و بی اهمیتی به آن گوش داد که نورا حسابی آزورده شد و اگر تولد دن نبود حتما چیزی به او میگفت دن گفته بود آره بدک نیست نورا نمیدانست. چرا چنین خاطره ای در تمام این مدت خودش را پنهان نگه داشته بود که حالا ناگهان سر بیرون بیاورد تقریبا مثل همان کوسه سفید بزرگ روی تیشرت رنگ رو رفته حالا خاطرات دیگری هم داشتن به ذهنش می آمدند واکنش شدید دن وقتی که نورا درباره یکی از مشتریانش برایش گفت اش جراح و گیتاریست آماتوری که گاهی برای خرید کتاب موسیقی به مغازه تئوری ریسمان میومد و از نورا پرسیده بود دوست دارد با هم دیگر قهوه بخورند یا نه معلومه که بهش گفتم نه اینقدر داد نزن اما بدتر از آن وقتی بود که نماینده ای از طرف یک ناشر مهم موسیقی یا در واقع ناشر موسیقی مستقلی که یونیورسال با آنها قرارداد داشت میخواست قراردادی با هزار تو دن آن موقع به او گفته بود شک دارد رابطهشان دوام بیاورد. همچنین داستان ترسناکی از دوست دوران دانشگاهش شنیده بود که عضو یک گروه موسیقی بوده و با ناشر موسیقی قرارداد بسته و بعد ناشر پولشان را بالا کشیده و حالا همهشان بیکار و دائم الخمر و این چیزها بودند. نورا گفت: میتونستم تو رو هم با خودم ببرم. توی قرارداد اسم تو میآوردم. میتونستیم با همدیگه همه جا بریم. ببخشید نورا اما این رویای تو بود نه من، که این خودش بیشتر باعث ناراحتی نورا میشد شد، چون حالا میدانست پیش از ازدواجشان با همدیگر دیگر چقدر تلاش کرده بود رویای دن برای باز کردن میخانه در رسته های شایر را به رویای خودش هم تبدیل کند، دن همیشه می گفت نگران نوراست، چون نورا هم واقعا در دوران حضورش در گروه موسیقی و مخصوصا وقتهایی که می خواست پا روی صحنه بگذارد دچار حمله های عصبی می شود. اما حالا که بیشتر به ماجرا فکر می کرد به نظرش می آمد نگرانی دن تا حدودی فریب کارانه بوده. حالا دن داشت می گفت، فکر می کردم کم کم داری دوباره به هم اعتماد می کنی. بهت اعتماد کنم؟ چرا نباید بهت اعتماد داشته باشم دن خودت میدونی چرا؟ نورا دروغ گفت معلومی که میدونم میخوام از زبون خودت بشنوم خوب به خاطر اتفاقی که با ارین افتاد نورا به او خیره شد گویی یک لکه ی شاخ بود که نورا نمیتوانست هیچ تصویری در آن ببیند ارین همونی که امشب شب حرف زدم قرار تا ابد به خاطر یه اشتباه توی مستی جواب پس بدم، در خیابان باد شدت گرفته بود و میان درختان زوزه می کشید. گویی میخواست برای خودش زبانی بسازد و چیزی بگوید. این همان زندگی بود که نورا افسوسش را میخورد. همان زندگی که خودش را برای نرسیدن به آن سرزنش میکرد. این همان خط زمانی بود که فکر میکرد حسرتش را در دل دارد. نورا تکرار کرد یه اشتباه توی مستی؟ خیلی خب دوتا داشت بیشتر میشد دوتا تا؟ توی وضع بدی بودم میدونی به خاطر فشار اینجا خیلی هم مست بودم. با یه زن دیگه خوابیدی اما به نظر نمیرسه خیلی هم پشیمون باشی. جدی چرا دوباره این چیزا رو میگی؟ قبلا حرفشو زدیم. یادت رفته روانشناس چی گفت؟ گفت باید روی این که می‌خوایم کجا بریم تمرکز کنیم نه اینکه قبلا کجا بودیم و چی شده. تا حالا به این فکر کردی که شاید صرفا به درد همدیگه نمیخوریم؟ چی؟ من دوست دارم دن. میتونی آدم خیلی مهربونی باشی. با مامانم هم خیلی خوب بودی. قبلا منظورم اینه که همین حالا هم مکالمات خیلی خوبی با هم داریم. اما اما هیچ وقت این حس به دست ندادی که از اونی که باید باشیم گذشتی ما عوض شدی. روی لبه تخت نشست. در دورترین فاصله ممکن از دن. هیچ شدی که از داشتن من احساس خوشبختی کنی؟ میدونی چقدر نزدیک بود دو روز قبل از عروسی همه چیزو لغو کنم؟ میدونی اگه نمی اومدم سر مراسم عروسی چه چقدر به هم میریختی؟ اوه واقعا؟ فکر کنم در یکم خودتو دسته بالا میگیری نورا. نباید بگیرم؟ منظورم اینه که همه نباید واسه خودشون ارزش قائل بشن؟ مگه اعتماد به نفس داشتن چه مشکلی داره؟ در زم حرفم راسته. توی یه دنیای دیگه تو واتساپ برام پیام میفرستی و میگی چقدر زندگیت بدون من داغونه و دائم الخمر شدی. البته ظاهرا تو دنیایی که به من رسیدیم دائم الخمری. همیشه برام پیام می و میگی دلت برای صدام تنگ شده. دن صدایی درآورد که ترکیبی از خنده و خورناس بود تا نشان بدهد حرفش را باور نمی کند. خوب خب، در حال حاضر که اصلا دلم برای صدا تای نیست نوره ها نمی توانست چیزی جز کفشش را در بیاورد در نظرش غیر ممکن بود که حتی یکی از لباسهایش را جلوی او در بیاورد اینقدرم به نوشیدن من گیر نده اگه قرار نوشیدنت بهونهی باشه واسه خیالت کردن حقمه که بهش گیر بدم دن من یه میخونهدار دار روستایی میخونه روستایی کارشون همینه که شاد و سرخوش باشن و کلی از نوشیدنی های زیادی رو که میفروشن و بنوشن از کی تا حالا دن اینطوری حرف میزنه همیشه همین طور حرف میزد واقعا که دن حتی به نظر نمی آمد اهمیتی بدهد و به طریقی قدر دنیایی را که در آن زندگی می کرد بداند دنیایی که نورا همیشه حسرت می‌خورد که به آن مجال پدید آمدن نداده. همانطور که هنوز لپ‌تاپ روی پتو بود و نورا او را تماشا می‌کرد، دن دست دراز کرد و گوشیش را برداشت و شروع کرد به گشتن در آن. چیزی که تصوریشو می‌کردی همین بود. رویات عملی شده. نورا، این حرفای فلسفی رو ول کن، بیا فقط بخوابیم. احساس شادی می‌کنیدن؟ هیچ کس شاد نیست نورا. بعضیا هستن. خودت هم بودی. هر موقع درباره این میخونه حرف میزدی چشات برخ میزد قبل از اینکه به دستش بیاری، این همون زندگیه که رؤیاشو داشتی. فقط من و این زندگی رو میخواستی با این حال هم به من خیانت کردی و هم همیشه حسابی می‌است میکنی فکر میکنم فقط وقتی قدرم رو میدونستی که به دستم نیاورده بودی که این واقعا علامت خوبی نیست. پس رؤیاهای من چی میشن؟ دن یا درست حرفایش را گوش نمیداد یا سعی می کرد وانمود کند که گوش نمیدهد. آرام و انگار که با خودش حرف میزد گفت تو کالیفرنیا سوزیه بزرگی شده. خوب، حداقل ما اونجا نیستی. گوشیاش را پایین گذاشت و لپ را را بستمیخواای بیای بخوابی یا نه؟ لورا برای دادن جای بیشتر به او خودش را کوچک کرده بود. اما انگار که دن هنوز هم فضای مورد نیازش رو به دست نیاورده بود دیگر کافی بود به دن گفت ایکزاگون چی؟ سوالی که وقتی پایین بودیم پرسیدی چند زلیه بیست وجهی خب یه چند زلیه بیست وجهی میشه ایگزاگون شوابش میدونستم ولی بهت نگفتم چون نمیخواستم مسخرم کنی حالا هم دیگه برای مهم نیست چون فکر نمی کنم اینکه من چیزهایی رو میدونم و تو نمیدونی باید برات آزاردهنده باشه الان نمیخوام برم توالت به این ترتیب دن را که دهانش باز بازبانده بود در اتاق تنها گذاشت و با قدم آهسته روی تخته های کف زمین بیرون رفت به توالت رسید چراغش را روشن کرد بازوها و پاها و بالانش گزگز میشدند. مثل الکتریسیته ساکنی که دنبال مقصد بگردد. مطمئن بود که دارد از این دنیا محو می شود. وقت زیادی نمانده بود. ناامیدیش تکمیل شده بود. توالت زیبایی بود. آینه داشت که نورا با دیدن تصویر خودش در آن نفس تندی کشید. سالمتر اما پیرتر به نظر می رسید. موهایش باعث می شد خودش را نشناسد. این زندگی نبود که خیال کرده بود. برای نورای توی آینه آرزوی موفقیت کرده. یک لحظه بعد دوباره جایی در کتابخانه نیمه شب بود و خانم علم با لبخندی كنجگاو از فاصله‌ای کم به او نگاه می‌کرد. خوب چطور بود